من الله الرحمن الرحيم. و الحمد لله رب العالمين و صل الله عنه سیدنا رسول الله و آله طیبین و طاهرین و معصومین و لحظه مصعر و عزاره مجمعین اللهم رفقنا و جمعی المشترلین و حمد رحمتی که آرحمن الرحیم عرض در مسئله بسیار معروفی آن در لسان علما و آیان در حوزه ها هم مفهره که ادله احکام چهار تاست به کیم عقل در این خلال صحبتی که راجع به کلام خیف شد و بحث این بحث شدیم به این مناسبت که مراده از عقل در اصطلاح اصولی ها و یا خواه های شیعه یا غیر شیعه خب صحبت های در اینجا شد و عباراتی کنده شد از بزرگان اصحاب که تفاصیر مختلفی راگین مسادیق مختلفی رو به عنوان حکم عقل در اصول بیان کرده. حتی مسئله مثل محروم و محروم موافقت و مخالفت به اصطلاح دلالت اختزار و ما و اشاره الان آخری این صحبته که گذاشته دیگه تکرار نمید البته این که مثل محروم عقل باشه یا مثلا استثاب یا براعت اصلیه این با مصطلحات دیگه جور در نمیاد اما در فقر و اصول مرادشون اینه حالا بخواب جو بیاد با اصطلاحات دیگه یا نه در فقر و اصول اینه البته در مواهش کلامی که بحث حسن خوب عقلی مطرح شده مواهش فلسفی شهر عقل نظری و عقل عملی و تفسیر عقل اون چیز دیگه اید این این است که ما در اصول مصدر کما اینکه در روایات ما که مرحوم کلینی هم باب اول کتاب کافی رو عقل و جهر قرار داده کلمه عقل در روایات باز به معانی دیگری اطلاف شده اگر آین شروحی که بر کافی نگاه بکنن همونجا توضیح دادن که عقل در اصطلاح محیث المجموع بر عده از معانی اطلاق شده خب طبیعا جای بحث ما فعلا اینجا نیست نه اون معنی کلامیش نه فلسفیش و نه معنی که در روایات ما وارد شده اون بحث دیگری دیگر. می اون بحثی که الان ما داریم بحث اصولی است که از کردیم قدیمترین ترین اونها هم که از زمان عمر وارد جریه استدلال فکری شد نه استدلال یعنی مصادر تشریع قرار گرفت قیاس و اجماع البته قیاس به معنی که شامل استصحاب هم بشه و اجماع و تدریجا مفاهیم دیگری اضافه شد که دیگه من دادیم که شاید مشهورتر از همشه استحسان و استثلاح یعنی مساله مرسله و صد زلایه و مسئله شورا این سه چهارتا شاد بگم بیشه گفتید بیشه نقش داشتن اجماع و این سه مسئله رخی البته مسئله خود دلال و جید عقل گرفتن که خوندیم بحث مفهوم و و اجتماع نه تمام ملازمات رو، مقدمه وارد جامد رژه اول گرفتن که گذشته، ولی انصافا اون بروزش این سچایت است. برایت هست، استصلاح هست، بیاض هست، اجماع هست، استخوان و استصلاح و به استصلاح صد زرایی و شورا مسائل شورا و رجوع به شورا بیشتر این کاربرد استصلاح اول در اصول. که آمد این بود و حضرت هم این بود که اینها ها مسادر تشریع یعنی ما با مثلا شورایی که قرار بودیم را مجلس شورا ما پارلمان حیعت مشورتی چون نحوه شورا هم فرمی کرد اینها با مشورت بین اهل هل و اهل بین فوقا اون هم باز ایک دیگه داره اون که اونها بگن اون هم میشه حکم شرعی یا مارعاق المسلمون حسنه فقوه امدالله حسنه این توضیحات بزنشی که تکرارش فایده نداره و یعنی مخلده به وقت رو به برنامه بحث اساسی تر به نظر ما این است که ببینیم چی شد که این مسائل وارد شد یعنی مسئله اجماع از کردیم در زمان عمر وارد شد قیاس در زمان و عمر و تردیجن استصحاق و مسائل دیگری کردانه شد. این چطور شد که وارد شد و منشهش در فرق یا در اصول چه بوده اون منشأ اصلیش من کرانا نعرض کردم مسئله قیاس و اجماع که رسمن وارد شد این یه هر دو مسئله چون قیاس رعی بود که حاکم میگه اگر اون رعی رو به مجمع مشارطی خودش میبرد اومد که سی نفر بودن و تهم میکرد میشد اجماع قیاس به ما به لحاظ زیر بنای فکری و فکری یک ریشه دارند نه دو ریشه اون ریشه مشترکشون اینه اینا محتقه بودن که در قده از موضوعات ما در اسلام حکم نداریم حکمی وارد نشده اون مثال محروبی که رانه ارز کردیم مثلا حد شعر به چون حدودی که در اون زمان بود در قرآن بود محدود بود یک چند تا حد هم از زبان پیغمبر مطرح شده بود مثل حد افساظ در ماه رمزان کثاره احسا برای مثل شرب خمر حد نقل نشده بود. اینا بوقسن این جور مواردی ما داریم اینها رو چه کار بکنیم؟ از اون برای حد نزنیم مثلا شرب خمر میشه. حد بزنیم قول به میشه اینا تصورشون این بود. عرض کردم در زمان اولشون فرصت زمانی کم بود دو سالونی و خیلی به اسلامی اضافه نشود. خیلی روی این مسئله کار نشد اما زمان عمر هم فتوهاد زیاد شد و واقعا مسلمان ها و جامعه اسلامی با مسائل جدیدی برو شد که چند تا نمونش رو از کرده. نه اینا هم می بخشن که بلاخته باید کاری بشه جروهش گرفته بشه دیگه دار... بله خب یک اده هم از همون سال بزن حد ندار چون پیغمبر نگفته حد ندار اده هم بزنی تحقیل چند تا شلقاش چند تا س... سیرت سوداچیان بهش گفتیم بریم. این هم بود دیگه بحث شد. تا نهایتا حجشون روی اینطور که اونا نقدی کرده رو 80 ضربه شد که من چون چند بار دادن دادم دیگه تکرار نمیخوام بکنم. این را چه به این مسئله. پس مسئله اصلی این بود. یعنی مسئله اصلی اصلی به نظر ما این بود که اینا تصورشون بر این بود که در اینها چیزی در قرآن یا در سنت نیامده. چون معترض بودن نیامده لذا مجبور شدن به این احکام رجوع بکنن یا گاهی اوقات معتقد بودن ولو آمده در قرآن و سنت، اما دست حاکم باید باز باشه چون گاهی شرایط زمانی اختزار میکنه یک حکم کاری نشه ولو حقم ثابت باشه خب یه مسئله علمی هم هست یعنی مسئله کمی نیست مسئله چون گاهی شرائط زمانی اختزار میکنه یه از احکام احسان پیاده نشه در از این زمان ما اگر بخوام فرض کنیم دیه کافر را که در روایات ما داره یک هشتمی یا یک یک دفن یا یک دوازدهمی دیه مسلمان بگیرن خب در دنیای امروز با این روابط جهانی ممکنون کشورها میگن دیه ها را کم بگیان دیه ها رو کم, بگیرن؟ ها را کم بگیرن؟ ما معامله به مثل بکنن یک مشکلات و حقوقی جهانی در ما درست بکنه این رو ما در موارد سابق هم مطرح کردیم خود یک که ای بود که قاضی و یک حکم ممکن است در یک برهه از تاریخ با یک مشکلاتی روبرو بشه من به ذهن خودم این طور میاد که این مسئله ای که عمر رخداد از متاتان ثقات الله رسول الله احساسش این بود که این حکمی این نیست این حکم رو ثابت می‌دونم خاصه انتشار متعه حالا اون چی بود قصش من چون بعضی از روایات مختلفه خیلی هم خوشم نیمونی که هرچی گفته شده گفته بشه به هر حال سلاح ندونست در جامعه اسلامی که متعصول حج باشه یعنی فاصله ما بین عمره تمتع تا حج تمتع رو از احرام در بیاد و محیل بشه میگفت این رو بمونن به همون حالات احرام یکی هم متعصول رو نظر او این بود که انتشار این متعصول نصار داره مشتلاتی برای جامعه اینجا خب گایی مساله‌تون داره شوادی اینا ما قبول داریم گالی داری میشه یک حکم دینی یک حکم شرعی در حدی میرسه که باعث مشکلات ایجاد میکنه این صحبت خود ما هم این روایت که پیران امام صادق به دو نفر شیعه فهمده اینو هر ما علی که ما المتعه ما دو ما چون این دو نفر از اهل کوفه بودن می در اونجا مشکل درست می‌کردن برای امام صادق مشکل درست کرد برای مشکل درست می‌کرد بالاخره گاهگاهی اجرای یک حکمی با یک مشکلی می شد این سوال مطبع بود امر این بود دست حاکم باز باشه با حکم برداره دست بکن دست حاکم باز باشه فعلا صلاح نیست مثلا حالا بلزا یک چه نوع نظام متحرک داره که کاش اهل سنت این فتره عمر رو بر حکم ولایی باز میکردن نه حکم واقعی و جائمی حالا اینطور بود شفا, شفا یعنی قلیلی حالا ما چون عرب فلاسفه ایشا گزارشون الا شفاء شفاء حالا حالا اد داره و شرید می نه ام ماامین میخواد به که بیا اجازه بفر من اج من, من بحث, بحث واقعی ظاهره نیست ما این رو اجازه بفرم و خ چ را گاتی میاره نمیشه این کار کرد؟ گالی میاره. اما وقتی اوور چه کار بکنه حب رو برداریم یا چون ما میدانیم که احکام الهی قابل تغییر نیستن، مصادر واقعیه دارند. این اگر گاهی پیدا شد این مشکل زمانی و محتاییه. اینه با مشکل محتایی حلش بکنیم سوال اینه. فرض کنید سابقا در خاطر ازدواج نبود و خب خیلی مشکلی بودیم اون زن اونهاشون این رابطه پیش یک آخوند درس داشت. خب در این مشکل درست کرد اون اینو تفر درست کردن. کلا منحری. خب در اسلام که نکاح معیبه به عهد محلیه که این برای که مشکلات اجتماعی کم بشه هر کسی ادعا نکنه این بگه نه این زن من نیست مثلا بیرون دوم میشه بود این کار که این گونه در او هست یا مشکلات ایجاد میکنه برای حل این مشکلات اومدن یه چیز اجتماعی اینا محضر برس کردن دو اوراق نکاحیه رو تا دفاتر نکاحیه رو ببینید به این از که ما بیاییم هک رو برداریم یا اینها رو با حل مختلی درست بکنیم چون مثال احکام اسلام یک مثال واقعی است حالا فرض در زمان ما مثال زمان ما فرض اگر واقعا دیگر اهل کتاب را باقی راهله کتاب دو تا می‌دید مشتقات دنیایی بنری بر می‌داد فرض کن می‌باید مثال بسیاری این رو میشه تا زمانی که کوچکتر از اسلامی یا کوچکتر از قدرتی پیدا بکنه به حیثی که بتونه هر اثبات بکنه پس اون یه لازم رو پس اون بگیم همون یه،, یه دواز زبانی چون بیه یه به اصطلاح احشتها با 800 درهن مسلمان ده مسلمان 10,000 درهن اگر 800 حساب بکنیم دواز زبانی چون در زمان فیلم برد خودش 8,000 بوده بعد همین مسئله مثل نرخ دلار در ما ما هم بالا پایین رفت از هش هزار کردنش به ده هزار این یه تحولید که بعد در زمان عمر شد خاطر آمدن پایی نامزه نرخ جرح شد از هش هزار به ده هزار ولی ازا این بحث میاد که آیا دیگه کافر یک ده اگر اگر تا و هش هزار باشه امتون علمان ما ندارم اینه بعضی بحث اینجا بگم شنان در داره و در محل خودش در بیات ما نرشته شده اگر رو اون حساب باشه یک دهم اگر رو حساب ظاهریش باشه هستد بسازده هزار یک روی دوازده هونینه حسابش اینطوری اینکه این یا این، این، این، این، این، اون نقطه شید. خب ممکن است بگیم دو سال سه سال پنج سال ده سال مشکل به و محل بشه بقیه رو از بیت المال بدن با مثال مثلا بداخل حل مشکل یک مطلب رفت و حکم مطلب دیگریه دیگه به شواهد ما حاکی از این است که عمر میخواست دستش باز باشه یعنی خیلی راحت میگه رسول الله این کار فرمودن من صلاح نمیدونم درسته پیغمبر برمودن من صلاح نمیدونم الان در وضع اجتماع حالا چی بود؟ میگن به خاطر آمدن یه مقدار ایرانی ها به مدینه و تمتعی که با نسای مدینه کردن با قولشون که نسل عربی مثلا به هم بخون چون عبارات تحلیلی این مختلفه. ما را نمی بخواهدون قید و غارش کن. خلاصه بحث اینه که ایشان گاهی یک هم تو همین خود توی مثلا همین نظام جمهوری یا اوائل هم که مجازی جلو مصر روی شدتایی می گرفت. خب پیش نیاد گاهی واقعه میشه ممکن که مملکت یک کشور ایجاد بیاره، یک چر یا یک اجازه یا توی, توی روسیه ایجاد مشکل بکنه. این هر میشه این کارش کنه. انکار کردن این قسمت، ببینید امام صادق (ع) علمی و هر ما علیكم شما دو نفر این کار نکنید بگرد روی ما دوم تو ما فل مدینه ما خواهیم بریم کوفه این کار رو بپنید اما تو مدینه جادی بیدی یه جا دیکن این در خود نحوه یه در خود امام ساله بگی حالا که شما بشکل داد اصلا متحرام حالا که موشی ما بحث اون اینه که این نحوه کار رو حاکم نمیتونه انجام بده تو بگه متحرام میتونه محدود بکنه. میتونه قیودی بهش اضافه بکنه. میتونه خصوصیاتی تا اگر اون مشکلی که پیدا شد چون این مشکلات مال وجود در خارجه نه مال واقع خود. خود واقع حق مشکل نداره. هر زد به علیه نیخی تو که این همه انوال داری تو چرا مسئله میکنه خب این وضعی را حارم خب پرسی بهترین و یک شنگه این چنگه ها رو میتونست به خرم اموال داری خب تو جایی نداری خود رو امام هر اختروندن این رو امام می‌خوام بپرسم تو در شرایطی هستی این, نکن. سآل این رو نکن سؤال اینه بحث سر این قسمتی خوب دقت بکنید بحث سر این قسمتی که اینها می‌خواستن که یا آشناب به سنت نبودن یا می‌خواستن دست حاکم باز باشه با یک مجموعه مشورتی یا با مردم مش... با هم گروه مشورتی بعدن به مردم اعلام بکنن که ما یه مصیری رو برداشتیم تندرو هر شموش تماتو احج هر فصلی این بود. چون او 10 ده سال که و قول خودش، او کومرفر در هر ده سال حج دار. این تصویر با فرضشم بعد از حج بود. از هشت بارش او بعد پیخت. این دهی دارمش. اون بخشی این بود که افرادی می رفتن مکه، عمره تماتو انجام میده از عمره در می آمدند، لباس می زدند، عرض می زدند، همه می رفتن. یه ادم تازه حجاج وارد می شدن با پای بهره و پای لباس های پارپاره و خاکالود و بس نوع ها پریشان این ها حاج بودن اونا هم که با اون لباس خوب این می کنم این دوستا به هم نگو یک عده دارم وارده مکشه می داره اعمال و عمره وزشون این طوری هستو بیابون اینها شما از اون طرف خیلی سرها رو لباس پوشید و پشنگ خودش اهد کن یک تا رسوم ماه همی یک تا رسوم ماه هم چنه هست مگر بگه این از خب این دوتا با هم دیگه نمیخوره این منظر منظر مناسب نیستوند که یه اونا هم حاکی باشن شما هم حاکی باشین هر کسی عمرش انجام داد از احرام در نیاده همون لباس و همون کیزه داشته حس, ب... حس بکنه تو هم به هر جی بره محرماتشم باشه یعنی؟ م... محرماتش خود اهل سنت اینقدر اختلافه امت چی بخواسته دیگه اینم که من دارم میگه روی قول ذهن که به ذه عبارات خود اهل سنت در نگاه خود احضار متحیرن که اصل کار عمر چی بوده؟ درزمان حاضر دقات... آمال نمی از اون مبارد ایست که قطعا اهل سنت بهش عمل نکنن این دیگه قطعیت دنیه که از موارد قطعی کن در فرمو بعضی از مبارد قطعیت جز مبارد قطعیست که به سنت عمل عمر نشده یعنی به هیچ فاید قبولش نکردن یکی شمه موسطل نسا موسطل پس من خیلی لاجبی مخلی توضیح صحبت نگم یک صحبت اساسی خوب دکت بکنید اینا اعتقادشون این بود و این اختصاص به این نداشت همین تدوین سنن که در زمان عمر مخرج شد خب این رو مهم گوتم بیاییم سنن رسولا رو کنیم عمر قبول نبید آخرش هم نکردن دیگه تدوین سنن نشد سرش به نظر ما این بود یک خودش آشنایی نداشت آگاهی نداشت دو می‌خواست دستش باز باشه که اگر بتوانه بتونه خب شایدشون متعتاکان تعالی احد رسول الله این عبارت متعتاکان تعالی احد رسول الله بخاری نورد از عجیبی بخاری خیلی عجیبین بخاری بخاری به اصل اون حدیث ورده از امیرالمومنین که ان امیر رسول الله حرم من متعبه لهما الهمر اعلی عام خیره اون رو از از پسر محمد حنفیه نرفته در زمین این موت از آن از رسول الله در کتاب‌های مسلم آمده. تو سعی بخاری هم این روش نیست. خود مرتاح ملاعیم باشید کی نشی طور حساب میکرد. یعنی این بخاری قبول نداره؟ ظاهرش بر رسول الله از علیه رسول اون هم ان ان خیلی. خیلی. حالا اون وقتم عجیبش اینه که خودشون هم دارن که آخه در بحث مکه جابر میگه ما موطئه کردیم چطور میشه؟ لذا خودشون هم گیر کردن گه انلا رسول الله حرم الموتئ و الهمور الاهلیه این لو هم راهی عام خیبر اون موطئه مال عام خیبر نبود یا گیر کردن اینکه چارهش بکنیم حدیثی که از علی بن ابی طالب نقل دهند علیهاره من بازم بحثه میشم چون بحثا بحث خاص خودش داره کردن الان صحبت این بحث اصولی ریش. وقت در مقابل اینها خود امیر المؤمنین و به اصرار داشتن ما منشه این الا و فیه کتابان او سنه روشن در حقیقت این بحث که اسمش شد دیاز و اجماع و بجزدی و بعد اقل این ریشش برگشت این نقطه اساسی. و من چران عرض کردم خود اهل سنه از هفته نور حدید میگه من المسلم که لغد هست عنی این مسلم میگیره رسایت هست جزو مسلم توش منکب دارم نمیگم من نمیذارم منم من میگم من. مثلا بخاری نقل کرده از عایشه که قیل دهاک ان رسول الله اوصا الی فلان اسمش رو ثقالت ما اوصا بیخود دیگه نصیحت هم پیغمبر هر چند در وقت خودش روی سینه‌ی من بود و اشاره به کسی در بیعت نه ما منکر که مسلمان همینا کلام اونها رو بعدشون میگن مثلا شماها نش نش نش میگین نه به این داد در بود در خود سعی بخاری از عایشه نقل کرده انکار مسایت رو لكن شواهد شعری روایی اینقدر زیاده که ای دلیل هر نیست حتی این است که مسایاث حد ثابت من اعتقادم اینه که همون تغییر سنن این اینو منشأش این یعنی اشکال اساسی این بود که اگر بنابود اینها روشن بشه شارای بیر از وجود به ورثی نداشن یعنی باعث به ورثی رسول الله بلگرد و اینا دنبال انکار وصایت میدهن اهل حدیث میگه ورثی بودن حضرت مسلمه البته وصایت بر امواله میگه مراد اینه که ایشون وصیت بر اموال و دیون پیغمبر این جزء مسلمات کعبه و جزء الغابا قطعی عنایت از زمان خود پیغمبره چه واژش هم زیاد نداریم خواوازیم بحث بشن کیشان ایشان لغبشون پس یه بحث یک بحث اعالیی بوده بوده دقت بکنی این اصولی نبوده کلامی بوده اون بحث کلامی هم این بوده با چند جد اونا میدونستن که اگر بنام و لذا مادام که باب وسایت رو بر بستن،, بستن این منشایی شد منشایی شد که برگردن یا برای همین مجموع تشکیز م... م... مجموع مشروعی که اومد و بودن یا برگردان به قیاس و اونیکی اونی که ریش یا مارا اول ترجہ و مراہ اول مسلمون حسنا فوعند الله حسن و الى اخری اگر البته تعبیر به حسن قبه حقیقی چون بعضها در کلام و فلسفه آمد در اضافه در اول صورت حسن قبه عقلی ال نبود این بعضها شورا هم در اول مطرح بود از کلام قبل از اسلام در مدینه مطرح بود بعضا احتمال دادن که اصلا خود مهاجرین مغرضشون جنبه شورایی نداشت بیشتر جنبه ولایی داشت این انصار بودند که مرضی مرضی شورایی بود و اخیراً در ثقفه مهاجران موفق شدند یعنی ابوبکر و عمر این باند مهاجرین موفق شدند نه باند شورایی ها که ازو مدنی ها و انصار بودند یه تحلیلی اینجوریه منظور من صحت و صبح این تحلیل رو به دقت اینجوری که ادعا میشه چون واقعاً شواهد تاریخی ما خیلی در اینجا پیچیدگی خاصی وجود داره که تا کردن واقع خالی از به هر حال این دقت بکن یک مسئله اول کار این بود اینا می‌خواستن در بین مؤمنین رجوع نشه خب این هم خود اهل سنت هم دارن نه اینجا ما داریم که بعد از خاطر رسول الله امین و مصحفی رو در جمع کردن قران و اون مصحفی رو بردن در مسجد و گفتن لا حاجز فلانا الهازه ما نمیخواید این تو بر اساس اهل سنت هم. نه در جمع قرآن قبول کردن با اهل سنی و نه لغت سنت از وقت پیغمبر اکرم شریعت جوی بود که کلیاد شریعت محبوظ بود. با این کارا از بین نیم رن. اون کمال شریعت اون درجه آلیش مورد خدچه قرار گیره. این یک مطلب مطلب دوم که من چرارن عرض کردم این یک مطلب خیلی که دقیق بکنید. در میان اهل سنن هم از زمان اومد یعنی او بخشون کمتر اطلاع داشت. و بعدی ها یه مسئله ای شد اون که حاکم بود لازم نبود که عالم باشه دقیقا یعنی ممکن است حاکم مثلا بعد از مسائل ندونه از شخص دیگری سوال بکنه همون حکم شرعی از شخص دیگری خود عمر میان 70 بار کمتر بیشتر در مسائل با نمود کرد به زید بن ثابت رجوع میکرد در این کتاب ال ام شافعی من مصادر اصلی اهل سنت ارج می کنم ال ام شافعی در میگه که عمر یه اعرابی ازش مساله پرسید جواب داد بعد یک نفر اعرابی که گفت با من تو مدینه بودن یک کسی مطلب از پیغمبر پرسید پیغمبر اینجور فرمود علاوه اون مطلب عمر, عمر گفت همون که پیغمبر گفت انجام بدین یعنی برای مثلا بعضی دو سه صفر مالوق شافعی خوب یعنی برای شافعی مشکل نیست که عمر پیامبر در مکه ایمان آورد، اسلام آورد، در صدر جامعه 11 سال مدینه رو با پیغمبر بوده، این مطلب رو از پیغمبر نشد که عربیه به قول عربا میگن این از پیغمبر شیعه باشه و این محترم بود. این براتون مشکل ند، به اصل این مطلب در تفکر اونها مشکل ند. این تفکر آقا شاپوری که جزء علماء و غاشنه، این حتی بعدها در برنامه های تدوین علمیشون حتی شفه فلسفیشون هم مشکل نبود. خون دیدیم رو از کتاب شفای شخور رئیس بحث الهیات، آخر الهیاتش سه صفحه با آخر مورد. بحثون فصلون فلسفل امامه، ایشون میگه امام باز میگه احلم باشه، حسن ایالت باشه، ایالت مدیریت، مدیریت باشه بعد میگه اگر احلم بود و کسی که مشکلی میگه به نظر ما اونی که مدیریت داره باز امام بشه با اون اعلم مشورت بکنه و به اون رجوع بکنه. همچنان که الی نبی حالا با عمر بود، تشقیق می‌کنه. ولی این یعنی مشکل نمی‌دونه که اونی که مدیریت داره متصدی نظام بشه ولو از نظر علمی عقب باشه با اون که اعلم مشاوره بکنه و از اون مشاوره علمی بده. این یه مسئله که بعدها ادامه پیدا کرد. دقت بکن این اولش خیلی ضعیف بود. حال دیگه رسمی شد. فرصوی ابو همیفه فقیه بود. اما فرصوی منصور دوانگی امام بود. امیر مومنگی دیگه منصور دوانگی در حضیه فقیه و و شاد نبود. لذا خالی نخواهی دو تا فقیه شد. خوب دقت بکنید. یک بخش ولایی فقیه شد به اداره جامعه شد. یک بخش استنباطی شد. اما ام سال ابو هنیفه اصولا خودش رو در بحث ولایت داخل نمیدونسن خوب یک خط بکنید یعنی خودشون محترف بودن کار ما استنباطه ولایت به اداره نیست این تفکیه که این دوتا خوب دکن فقه ولایتی با فقه استنباطی مثلا محترف فرصه احمد النهنبر شلاح بوده در یک قول به قدم خورا. گوی روزا سرویسه در انشاءالله بشینید. من میخوان در موضوعم. خب بعد از این جاسوسایی دوستان که بابا این خلیفه تو انشاءالله داره اطاعتش واجبه. گفت نه نه نه چی انشاءالله واجبه. اطاعت خلیفه واجبه. گفت خلیفه. خب این آقا خلیفه به من عارف خلاف هر خلیفه صحبت میکنه شلاق میخوره. میگه نه آقا هرچی میشون. خلافت ایشون به معنی میخوره مرقوم باشه رعایت یعنی اینا امالند دقت بکنید. امسال ابو زاویهی که به فقه نگاه کردن فقه استنباتیه نه فقه ولایی چرا؟ چون عروحنیفه خودش ولی عمر نمیدونه اصلا در این داعه رو خودش رو نمیدی و لذا یکی از مزایای اصلی فقه شیعه این شد که شیعه نسبت به امام صادق دو نظر داشت هم به احکام واقعی که امام صادق میرسید هم که یا امولی میگونه خوب در قسم لذات طبیعت فقه شیعه خوب درخور یک فقه ولایی نیامد این دوستان تفتیق بکنه اینه که مثلا در فقه شیعه معروض مرجعه تقرید یا مشهد یا فقیقی که ازش تقرید میکنی فقیق باید زنده باشه حی باشه اون حیات شرط از در فقه ولایی در فقه استنباتی که حیات چه نیست علم انسان که به مود از بینه میره اونی که حیات در شرط اون فقه تو مورد که ولایت از جامعه به خاطر انتزاج و عدم تفقیق فقه ولایی روشن شد از فقه استنباطی این منشأ شد که شد مثلا ابو حنیفه الان بین اهل سنت گفتن ابو حنیفه اینجور گفت ابو یوسف اینجور گفت شیبانی اینجور گفت چون نه ابو حنیفه خودش ولیع میدونه نه شیبانی میدونه نه ابو یوسف ایشون خودش بلی... ولیع ولیع منصوص ابو یوسف که هارون میدونه دقت این مسئله رو خوب درکش رو و از سالهای من از کم 56 تا 70 حرکت فرد در جامعه اسلامی شروع شد. اصول اصلهای سال 70 و 80 شروع شد. چند روزی مطلع میشم. تدوین اصول یعنی اول فقه بود، ازور دادن سه آمدن چه که کوه مدینه هر شهری هم بر خودش فتی داشت و زاویته خاص خودش بعد آمدن اصول رو است... در آوردند برای که این نکته رو ذرا باید دقت اون اصول شد اصول فقه استنباطی چون فقیه بلالی مخرج نبود چون فقیه بلالی درشون حاکم بود اینا از همون اول اثر از... اولش خیلی کوچیک بود عمر رو کردم ولی یعمر بعد از این چی چون شد ولیه هم و امیر المومنین در مسائل وجود کرد برای بعد دیگر دیگه رسمی دو شدن یعنی دیگه مثلا فرض کن توی ولی امرو چند کسی بود که میگن عالم بود صحیح بود مولا بود خیلی کم خیلی نادر بود صحیح کسی دیگری بود وقت بنی امرو که مردم باعیاد انتخاب کردن با شورا انتخاب کردن کسی دیگری بود ایناش مهمه وقتی که آمدن اصول فقه رو بنویسن اصول فقه استنباطی رو می‌نویسن متاسفانه اصول فقه ولایی نوشته چه نشد؟ مشکل کار شد. اگر این مسائلی که به عنوان عقل الان ما مطرح کردیم اگر اینو می آوردیم ما چند روز صحبت می‌کردیم. تمام این صحبت‌های ما رو اصول فقه استنباطی حالا ها ما اگر استحسان مطرح کردیم استصلاح مطرح کردیم رو اصول فقه استنباطی اما اگر اینا رو بیم تو اصول فقه ولایی مطرح میکنیم خود خب اون صاحبا نفش فقه رو می کنه خوب اون استحسان و استصلاح مطلح چیه شورا چی میگه مثلا شورای کذا انتخابی مردم که کرده ای رو اگر ما میامردیم از دائره فقه ولایی فقه استنباطی خارج میکردیم می که دایره دائره فقه ولایی و اینها رو به ازوان اصول فقه ولایی کوب بخن بکنید. این اصول فقه ولایی اگر می این فکر خوبی بود اینقدر بحثایی که کلان شما شما شید پریشانه از حالت پریشانی شد درد می آمد. حالا اگر برگردید این را ایش بر عرفتن که در سلوشنسو مثل استثحاب. استصحاب هیچ وا در فقه ولایی کاربرد نداره اصلا منو داره اگر ما مراد ما از استصحاب چرن هر استصحاب در شواهد عقلیه کلیه مراده مشکلی نیست با وجود این روز با وجود یک نه اصلا مراد این نیست این خارجی مثلا این زن ها و اختیارشون صادران یهر و اختیار در لحظه اول اختیار داشت این رو استصحاب بقای اختیار گفته مرادمون کلیه مرادم است من هرچی میگم استصحاب مرادمون استصحاب که در اصل مطرح بوده اونه که در اصول مطرحه واقعاً به عنوان تشریف نه در موضوعات خارجی اون در خارج من درم استثاب که اصول پرده میده اینجا نداره خبیه هم تو شریعت ما تو پرده استثباتی آمده تو شریعت که مثلا این آق رنگش قرمز بود به خون نجس بود حالا دو روز گذش خونه را کرم هست آقای این پاکی یا پاک نیست اون اینکه موقع پاک ن بودن تا حالا نگیر تو دارم نجد این استخاب در شما رو حکمیه کلیگه این قطعاً با فقه خیولایی که این استخاب جا رو که خیولایی قیاس ممکنه تو فقه خیولایی مقداری نفت داشته باشه اما خیاس ها دیه اجما قطعاً توی فقه استنباطی نفت داره توی فقه خیولایی هم داره و به, به نظر من خود من بعضی مواردش مشکوکه مثلا من عس کردم وقتی اراق سرد شد یا گیر کردن زمین ارااق خاکن تقسیم هم میان جنگند رمنده ها مثل یکی گفت تقسیم بکنی زبهه یا کردهتر رو تقسیم بکن اینایی که رفتن تو چند شرکتگرد برنا که که دیگر بود دو تا پنج تا زمین برید چون زمین زراعت شده بود پر از ر خورما بود قابل استفاده اگه دید هر کلا نه تو ما مشورتی. اگه 5 نفر کرد سرم. ایده مطرح کردن که نه این حید زمین بیین بزرگیره چیکی چیکی بکنی. و این رو به افراد بدین. این رو نگه داریم برای امنه مسلمین در امن بشه. دوسو بیکل مال به امن بدین. مثل پول نه. مثل زمان ما مثل پول نه. ما به جای اینکه اینو چیکی بکنیم بکنی، همه مسلمان شرکت کن. این برای همه مسلمان تا روز قیامت باشه. نه نماینده مسلمانان در استقلال همان ادین است بعد از حتی... حتی... حل... اینکه حاقه حافظه و خراب نشه تو بعد از واسه یک ماه اون این تقریبا تردد آخرش تقسیم بینی شد که حق با علی بن ابی و نتیجه گرفتن که زمین عراق رو زمین شراجی اعلام کردن شراجی در آمد زمین در آمدی به این معنی که دست مردم بدن اجاره بدن کار بکنن پولش بشه به بین همه مردم این بکنن ای خراجی این خراجی این طوری شکل گرفت روشن شد که هست اینه من چون تو بحث خراج مفسرم در چون یه از کن زمین خراجی بین مقدس ازردگی از یک ترم مقموم اخش کرکی از یک ترم بین مقموم شیخ سلمان قطیفی شیخ قطیفی از یک ترم دعوای شدید در زمان سفرگیه درست کرد به خاطر حجومی که برای راه کرده بودن حالا نمیخوام بازون بس بش به ذهن عالی خوب این نکته فنی اینجاست این نکته رو خوب دقت بکنید این نکته خیلی ظریفه سوال اینه این اجماعی رو تو عمر قبول کرد و اعلام کرد آیا این توی یک مسئله یه ولادی یا استنباطیه حالا شورا به شما این اجماع و شورا و استصحاب من به نظر میاد همه متقاردن با هم شد این آیا یک مثال براتون نمونه داره؟ برش فکر کن. خب اینا ترسیم گرفتن ارز ایرانی شرط خارجی. حالا اگر راستن فکر کنی ارواح امروکاری که از دست آموزد، شوم جنگر آموزد مثل زمین ایرانی که بودن متشکل از یک زمین بزرگی که آباد. ارز خارجی نرایش داده یه ترسیم شو که بساز. به کار بکنی مطلب. آیا این فجعه سمباسی؟ عن های ما که استنباطی ورنیده فقهای ما ها رو بهش می‌خوری شما که جوانه بحث قناعه نگاه می‌کنی میگه بنا اگر غیر منقول بود ما رو امه مسلمان اگر عامر بود آباد بود مثل عرض عراق میشه کراچی این تقسیم میشه خب احتمال دوم که اینو بگیم فقه ولایی باشه شما فقه استنباطی باشه قابل تغییر باشه, باشه. باشه. مصلحت دیدن این زمینه عراق و خصوصیتی که داره خب یه زمین دیگه که بکنه مزرعه نگیه. تبه کلا همین طور شو. این رو دقیقاً نقطه فنیش شد پس این چندایی که اسمش از اجماع و شورا و مصلحت و صد درای مثلا صد درای انصافاً صد درای کارور به توفه‌دلاری قطعاً میشه استمباتی. صد درای مثلا احتمال داره افراد از این مثلا برنامه شو استفاده بکنن چی میشه؟ جلو میشه نمی گیان یعنی مقدمه کرام نشه احتمال هنوز یه صد و ذرا‌ی این صد و ذرا‌ی کائنات تو فقه استنباطی اینجا خالص خرابه اونی که کار روشن شد اونی که کار رو درست میکنه اگر اینا رو کلا که به اسم هر اسمی که گذاشتن پس بنابراین استصحاب تو فقه استنباطیه براءت تو فقه استنباطیه مفهوم اگه جزء فرق باشه مفهوم منطوق و, و دلالت دیما و... اینا تو فقه خوب روشن ما بیاییم این چیزه که مرحوم آهای مولا محمد همین استعالی یک جا چند کرده به اسم همه حمله کرده ما که فشن اینا رو مرزمندی بکنیم یک مقدار جد به فقه استنباطیه یک مقدار جد به فقه ولائیه. چرا جدا نشد؟ چون فقه اهل سنت فقه استنباطی بود چون فقیه احل سنت کار من استنباطه من ولی نیستم اصور هم از اون فهم شد الان هم کل اصول ما شما هر کتاب اصول نگاه تو توی فقه بلایی ندار اصول فقه بلایی تویش الان تو اصول شما در بیگه شما بحث راجع به اصول فقه بلایی شما. اون چیزی کرد؟ چون ما از اهل سنت گرفیم اونا هم از فقه استنبادی شد استخناج کردن چون اصول فقه استنبادی پس با این تقریبی که من اعز کردن این مسائل هم حق دقیقش جاده شد نه اون چون بگیم اینا همه تند بگیم اینا رو اگر بیاریم خیلی ولایی و نسبت به زمان و شرایط زمان و خصوصیات با دغاوات خاص مشکل کار ما من خودم نه الان چند مورد در این مسائل بحث می‌کنی گفتیم اینا در تخه استنباطی صحیح نیستن اجماع بر اعتباری نقش نداره قیاس نداره خود بنده من قبول ندارم براءتم قبول ندارم این بحثه براءت شرعی به اطلاق خودشون این رو به این معنی که اونا میگن قبول نذ. خب دیگه به طریقه و و مسائل دیگری مثل استثناء و اینا. ما حق مطلب این است که ما بیایم یک فقه ولایی هم درست بکنیم، اصول فقه بیایم حال نهال در حدود فقه ولایی مطرح بکنیم. دیگه حالا من حال و نداریم این اینو واسه می‌گیم آخر الشاطری که در واقع هم در الشاطری اجمالاً مطرح شده. و ايدا به نظر ما این خلاصه مطلب سر رجوع در این مسائل به این جریاناتی که گفته شده بود یک مقدار بحث کلامی دو یک مقدار زیادیش که تو اصول آمد اشتباها باید تو اصول فلحه ولایی می آمد. و اگر در اصول فلحه ولایی بیاد زوابه شهر می کنه استنباتی دیگه بنا مقام اقراض ببینید ممکن حکمم باشه نه ببینید اگر حتی حکم باشه کیفیت اجرا با. چون حاکم مثلا سراح نیزنن حکم اجرا باشه آه افضل میشه احکام سانویه میشه احکام سانویه میاد استهدار میاد مثلا منطقه از خود منطقه از فراق اصلا تحتوضیح باز داده بشه اینا همه میشه در داره حکم ولایی فقه ولایی حرف ما یک کلمه است این فقه ولایی جدا نشد اصولش مدون نشد خرد شد با استنباطی نتیجه این وقتا پیش حالا ممکن است چون خیلی وقت نشد بیایم تا درسی بخونیم این دیدی که از کل خل بحث کلا خارج بشیم که فعلا جاش میاد پس اون چیزی که به عنوان عقل الان مطرح شده در کتب و اصول خیال نشه ما مثلا میگه مراد اون عقلی در روایت عقل آمده و عقلی در فرض اون چی که در اصول مجموعه ای که در اصول به عنوان عقل آمده که خوندیم اسمایم بردی این کلمات رو گفتیم این مجموعه در استنفحه استنباطی ادیش درسته فرض مفهوم مند بود چراث خاص خودش داره مرحوم محقق گفت مفهوم مندون از جو بحث عقل حکم عقل خالص یه اصولی این مفهوم ملا محمدین حق نداره میش با بحثی از مفهوم مند با ما درش خودمون یه بحث علمیه رابطه دثق و رابطه سنی و شیعه نداره اگر گفت این جا که زیدون فکرنمون مفهوم داره نداره بحث نداره یک مقدار از اونایی که اسمش عقل اونا مسلم در بحث و اصول هست و قطعاً هم تو اصول فقه استنباطی قطعاً یعنی جو بحث نداره مثل استصحاب استصحاب هم یک مثلا مستقلی نیست شواهدی داره شواهد روایی داره غیر روایی داره و اما یک ادعی انصافاً عبور در فقه استنباطی چرا اینو خیال میکردن اگر حاکم کرد بده به مشهد مشعل حکم میشه بگه. ما میگیم نه نمیشه حاکم یکی باشه مشعل دیگه باشه این دوتا یکی بشن که بتونه تصمیم بگیره نه نبگه من مثلا مثلا قضا میخورم که اون آغا سیر بشه خب این که معمی نداره که چیا؟ این... نمیتونه ما خود ما عقیده که در تقلید هم از کسی تقلید بکنه که لاعقل صلاحیت اداره داشته باشه ولی متصدی نباشه تصدیه 20 مدیر که معناه داره که خیلی لرمه که جامعه رو برمیزن و کسی هم مدیر باشه که صلاحیت استنباد داشته باشه این اعتقاد خود منه این که ما بگیم یک کسی مستصدیر بشه اما طبیع نباشه طبیعه جامعش داره از نباشه تقلیلش درست نباشه اما اجرا از اون باشه این مشکل یه هم یعنی مشکلی در بینات به سنت پیدا شد تفکیه بین مقام استنباد کار استن این چه ورای امام رفتن گفتن اعلم با چی باشه حی باشه این که گفتن مرد باشه زن نباشه اینا روی نکته فقه ولاییه این مجموعه شرایط فقه ولایی جمع شده این شرطی میشونه منم در مرجعیت هر درستش کرده یه از اینها جزء خیلی هم ولایی نه جزء به استنباطی پس یه مقدار در اینجا که الان محدث استرابازی و علماهای ما بعد از ایشان بحث ها وارد شدن هر از دیگه بحث نکردن معلوم شد اون چیزی که مجموعا در کتب و اصول نه فلسطه نه روایه ها نه کلام اون چی که در کتب و اصول آمدن به عنوان عقل گفتن اینا هر کدوم حساب خاص خودش داره بعضی هایچ انصافا تو فقیه ولایی خوبی دارن اما تو فقیه استنباتی نفت ندارد که سه مسلمان از این کار خوشی میدید خدا با حساب دیگید با حد زرایع و باث احسان و استصلاح از این طرف ثقه استنباطی ثابت نمی‌شه اما نه نقش اساسی تو فقه ولایی دارن تو فقه ولایی نقش اساسی مالی این ها. توی فقه ولایی دایره حکم سر اون موضوع با حکم بده اون حکم تا لازم الاجراست لكن مثلا امیر وقت همون شده آقای محال تکشیرم وقت بخ... 10 دقیقه امیر ره... و مومنین فرمونه که از اصل زکات بگیرن خب این زکات گرفتن که حکم اولی نبوده این حکم اجرایی بوده خب هست موقع است البته این الان شما صحیح که خب به من بگید که خب پس Obsiong. این بحث فرقه بدایی این رو بزرم میکن اینا بیا تو داری این جای مناسب شده اونجا. لیکن چون ما تنمیه برس و رسول ما همه شو فقه استنباطی شدیم خود به جهاز به خودش یک قصیم فهمه در این که سر خط در مسئله روشن شد سر خرابی کجاست بین فقه ولایی و استنباطی خرج شد اینا آمدن گفتن که مثلا عمر اگر اگر نیمون حکم عمر رو در مورد فرز زمینه عرب حکم ولایی میگردن خب خیلی نه دیگه فرم میگرد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 یعنی اگر ما به فکر لا تهنو ولا تهزنو و انتم الاعلون هستی با این که انتم الاعلون درست کنه کی قراره بالاذر انتم لازر میگه این جامعه کجاش خراب شد یه درستش بکنه این که کار کردی منتظر میشین یک ذرم ذهن نه یک نقص پیدا بکنی نقصو درست می‌کنی این لازر معناش اینه بالاذر میگه با جامعه با جامعه درست کرد. اون که خاطر بود انتم رو درست بکنه انتم الاعلون درست چرا؟ خب من کنید تو مولا پاوری و مولا من سایت چیه؟ اصلا امیر و پیغمبر از روز اول دهی از ایکم یوبایون یه حالان یکون وسیع خلیفه دیم اصلا از لحظه اول جدا نشده وسایت. و لذا از خیلی از مدتنی از, از اول معروف بود ویسایت چون از مکشه چه بو شد؟ مثلا رو گیر ذکر اجتماع و, و یه در بازی در بازی در بازی شد. هست اما این چه استنباطی گاهی کیفیت اجراش، اول این گاهی دقیق خود کتابشون نه. خودش مسئله کمه نی. هم تو ما آها، هست. آه. هست. میخوام بگم می اجازه نه. یعنی چون یه گفت این شلطه از خون ولیه هم اون رفتیه که که که از بیده بیده عادی خب این شکنی داره بکنه؟ نه نیا کتاب علی امه شا... شاید سالی اولین کتاب و اصولی عهد سنته. اگر خیلی واقعا باغن... واقعا تعجیب های بخونم فرده از که رساله دارم امثال که امامون اونتشن به قول خودش یه تنبّه نمیگن که این آقا این هر با پیغمبر بود این حکم برات نبود این اعرابی عالی برات بود خب چه دیگه این براتون مشکل نیست وقتی اون رو اعلم صحابه می دونن اون رو اعلم صحابه، اجل شاب اعظم صحابه هیچ براتون مشکلی نیست این واقعا برای ما تصوّر شورا آدمش هیچ کدوم از اهل سنت هم ندانستن که علی بن در یک مطلب به کسی مراجعه کرد هیچ مشکلی نداره که این مسئله مثلا نظرشون این بود بعد فلانی چیزی گفت و هرگوز نظرشون بکنم بود مراجعه کرد خب این بحثی که هست اینه اولا خود سنت خود کتاب تبیین دقیق کتاب و تبیین دقیق سنت چون این کار آسانی که نیست که بعد مسائل اجتماعی اجرای او انتباق او تو جامعه که او چیو در جامعه فیلی انتباق پیدا بکنه جامعه اجتماعی باشه آقا؟ گفتم اجتماعی اندازه کتاب دا معنای دقیقاً هر وقت باز مثلا مشکلات پیدا میشه مثلا همون قصه که دو بعد یک هیچ اجرای خارجی مثلا ما با فلان کشور رابطه داشته باشیم یا نداشته باشیم فلان صنعت ماشین میخوایم بیاریم سرعت ماشین اروپایی بیاریم آمریکایی بیاریم ژاپنی بیاریم چینی بیاریم دقت خود از آ این به احاله برگرده به شورا برگرده به استفسار برگرده به استسلام این ما این بود اینو به نظر خان جی گفتن تا شورا به این شورا من متخصص 20 بار میگن 8 تا میگن سند گلان بدین 10 بار میگن سند اجازه بدیم بعد از مشورت با اونها بیایم همین امر قرآنی رو انجام بدیم و مشاورهم فلان امر که اداره ضمن تصرف کردن عللا الله می همین شورا یه بیاین اینجا یکی اینجا بذارید خب سنن از اینه که ما منتشر بداریم خصوص ببینید احکامش من میخوام تمام چهره حکومتیام با ثانوی درست کنیم استرا درست بکنیم ما در لازم نیست که ما اداره جامعه رو به دنبال سقه استراری و سری و کپ مثل ضرر و لاذر نمیشه جامعه رو اونظره کرد. جامعه ای که میخواد بالا ذر و ز بشه رو درسشه همیشه جامعه بد ده و عقبنده ای اصلرش کتاب هم. سنت قبول با اوملا اعاله داده شده. اون جایی که کتاب سنت نیست اجازه بدیم بحث اینه که کتاب سنت در اون جایی که استنباتی است، و واقعی است، اونا به مقدار کافی هست. اونا میگفتن نیست. این اشکال اینجاست. آ نه گوش بدید آقا. دو روند که بحثه اداری جامعه است که بعد همون‌ها بیاد در جامعه اداره بشه. این نحوه ای اداره با این مشکلات روبه رو بوز. این مشکلات باید حل بشه در سطح حل بشه. در حل این مشکلات استصلاح در نظر گرفته میشه، شورا در نظر گرفته میشه، فرضاً صد ذراعی، بله صد هزار گویی این مراحل در نظر گرفته میشه. اینها رو من قبول دارم یعنی اگر اینا به جای این بحث اصول میوردن تو اصول فقه ولایی میکردن کردن مشکل خاصی ندارد نتیجه چی شده تو اصول عبردیم کارایی نداره. در اونجاییم که کارایی داره بحث نکردیم ما الان یکی از مشکلاتی که در نظام های اسلامی خودمون به اسم شیع داریم همینه که حد و حدود اون اثر فقه ولایی رو نستمید مشخص رو کنیم. ماشین وایت رو که تو اطراف اون مال فرق ولایت استنباطیه ماشین استنباطیه تا که هن؟ استنباتی ها مال فرق استنباتی ها چی مال فرق نشن که او بوده استنباتو با استنبات یک جا بوده. او یکیش مال فرق لایتی که گفته استنباتی. او این اصول که فرق تو رو وایت رو نگرفتند؟ ولایت. نه. شورا در قرآن دارم شابه رو هم قلعا از ویدار ازم اما سرد زرایه نمیده